تا دیدار آخر شاید رسید از راه فردا یه روز به تر بلک هواداره تر چون ولدی بخندی با چشم دل ببازیم با اش دل ببندیم ازباک دلب سبزه هیچیه توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا نجوا که قلب سبز پیشیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا سلام سلام سلام به همگی حالا احوالتون چطوره؟ خوبین خوشین سلامتین؟ این رادیو پس فردای شماری 978 امروز شنبه. 11 بهمن ماه 1394 هم با شمایم یک هفته دیگه آغاز شد یک رادیو پاسوردهای دیگه برو بریم چينه, چين، چينه حالا حالا حالا بیا بیا حالا ها ها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 روی در و دیوار شهر پرگشته از پند و شعار از بحر زن لاک و صدف چون پوششی تعین شده هر جا شعار آمد شعور از دور خارج گشت و رفت گر این یکی هستان یکی پنهان ز دست این شده با تشکر از شاعر شعار زدمون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 اینقدر جواب میده توی مملکت خلاصه که باشید و باشیم و باشند دوره هم یکم شعار بدیم ببینیم چی کاسب میشیم برو بریم آه. عزیته پوشاک و لباس های برند توی ایران دوستان عزیزان خانم و آقایون یک داستان پیچیده ای که حتی اون های این کارش همگایی سر ازش اشته نمیارن الان شما به صحبت های این تولید کننده پوشاک ایرانی گوش کنین که خیلی شیک و تمیز مارک پولو رو که از گرون ترین برندهای لباس توی یکی از گرون برندهای لباس توی دنیاست حال کاراش میزنیم مارک و همین کار ها با قیمت های توی بوتیک های بالاشر فروخته میشه و میره اینا گوش بله همشون ایرانی الان همین کارو وقتی این مارک زده نمیشه روش مشتری از ما خرید نمیکنه. این یه مارک قش اروپایی زده اینجا رسد. رسد. همین کارو می بینید به خاطر اینکه میگم همون مشکلات که تول داخل و بخواه مارک خودون رو بزنیم نمیخرن استقبال نمیشه من همین و همین پیرانو الان هفته پیش یکی از مشتریه. که شمال شهر هم مغازه داره اومد از من خرید بوده 100 تا شد دونه 25000 تومان داره اینجا میفروشه ولی اونجا یه حلواشی یه چیزی بوده 33000 تومان پیرامون داره اونجا میفروشه بیا 600 هزار باز تا میخواین لباس بخرین این جیب مامان بابا آره خالی کنین پاشین برین بالا شهر که حتماً حتماً برین اون پاساژ فلان که از بهمان مغازه که جنسش از خود ایتالیا براش میفرستن لباس برند اصل بخرین الان چجوری دین اون لباسی که شما براش 300 هزار تومن پول دل تو خوش مثلا برند پولو اصله در از برند برادران نمیدونم چی چیز اده اصل فلان جاییه توی تولیدی اطراف جمهوری دوخته شده قیمت واقعاً 20 تا 25 هزار تومن تام خوشو درافت حال ما وظیفه بود اطلاع رسانی بکنیم دیگه دیگه شما اگه حس بهتری دارین که 300 زار تومن بدیم بالا پیرن 25 زار تومنی بپوشینش دیگه خودتون میدیم والا سلام سلام علیکم گفتی الان از کجا دارم برات وایس میدارم خف کجایی؟ از و چتر با خواستم بدونی که من یکی از خاطیری شونده‌ها شدم. آقا یا صداد معلم به سمت خود دیزینم. هوا خیلی هوا خوبه. بابا. جات خیلی خالیه. حسامم از مالزی ولی الان از دیزین. قربون تو. قربون خودت حسام از مالزی که رفتی دیزین، رفتید و داری اسکی می‌کنی و الای که کوفت چیز یعنی خوش بگذره خیلی بهت تو جای ما رو خالی کن دیگه با این باد و سر و صدا و اینا همون رو سیچ بدی دیگه اول فکر کنم با چت بریدی از ما داری یه پایین صدای باد میاد به حال مرسی که به یاد ما بودی خوش بگذره اون حالشو ببر به ما همونجوری که گفتم این هفته میخواییم در مورد شعار و شعار زدگی بایتون با صحبت کنیم امروز در اولین روز برنامه میخوایم مروری بر استفاده های برون مرزی از شعار های شکن داشته باشیم که البته فقط برای شکستن دل دشمنان کاربرد داره و هنوز موردی مجاهده نشده که مثلا کشوری بر اثر شعار های ما دچار مشکل و دردسر و چالش خاصی شده باشه به جز همون دل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 خب نمیدونم پارسال بود که پلیس ایران یک فردی رو به اسم عیسی باشاگردی یا اجتهاد نکنم دستگیر کرد که اینجوری که گفته شد از های دونه درشت ایران بوده و لقبی هم که بهش داده بودن تمساه خلیج بوده دیروز رئیس ستاد مبارزه مواد مخدر در مورد پرونده این آدم و گردش حساب این آدم یه صحبت هایی کرد که بعد از شنیدنش ببین این موی تن من سیخ شده همونجوری سیخ مونده اصلا یه و... بچه ها شاهدن اینجا گوش بدین؟ من قول میدم ماهی همه سیخ بشه گوش کنی. آخرین پ... نتیجهی که من از پرونده ایسای بشاگردی یا تمسای خلیج داشتیم بیش از 20 هزار میلیارد تومن گردش مالی این عنصر واقعا پیچیده و مافیایی هستش که در سطح کشور ما متاسفان اتفاق گفته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 کاسبی میکنن اینو دیگه من نمیدونم دیگه حالا ببینید فقط خدا میدونه چند نفره بیست هزار میلیارد تومن؟ شما سعی کنین وقتایی که کاری ندارین به این رقمه همینجوری فکر کنین بعد ببینین چجوری میشه در اون قرای جهان اسلام یه قاچاخچی مواد مخدر چون این گردش حسابی داشته باشه ای فهمیدیم به مام بگی. بگید به خدا؟ ماشین مشتی مندلی عرضونو بیمو اتلی ماشین مشتی مندلی نه داره نه سندلی یعنی <musician> حب زیون قدیم ندیم و که ما بچه مدرسه بودیم این دعی از روینو که می اومدی این نور عروسی بابا <م ait Mondial> <متار> به زونشون خوشحال بودیم که اروپامون بند نبودیم با این بچه هم کلاسی پول تو زیبی رو بذاشتیم رو هم میرفتیم چی کاغذ ششی و از این کاغذ رنگی منگی و اینا میخریدیم میرفتیم رو سر و کلم تا در و دیوار کلاس رو چی حضینات بزنیم که چی دعیه فضره زا حالا این بطه های الان آقل ماقل ما هن کارشون نرسته دیگ مثل ما بلا نسبت شما تی گاگول ماگول نیستن که <تصفيق> والا یکی نیست بگی آخه بچه تو باد پارچه سیا بزنی به دره دیوار پاق از رنگی میزنی دونه ای بل آره آره, آره آبدی بخور بخورم برای بود یعنی تی آبدیتونم براتون به یه محصان از مثلا آشرشته بدم میومد بچه بودم دان آره دیگه عقلمون کم بود دیگه <تصفيق> منطقه این دعیفت که میشود زنگ تفریه های آشرشتی میدادن یعنی من یکی آذر بودم کل ندیگو تی یه سره برم مالا به زور شما عبزی. یعنی از یه طرف یکی یه کاسه آش میداد دستمون از یه طرف دیگه هم نیارو نازمه میرفون بالا شروع میکرد شعار دادن چه تکرار کنی سه میدونم توپ تانک فش فشه دوور ما چیز... چیزه این نه این مال استادیوم بود میگفت حالا ما یه کاسه آش تو دستمون یه قشوق آشم تو دهنمون با شواره میدادیم دیگه <تصفيق> ولی چی آل میداد دیگه با این هم کلاسی میزدیم تو سر و کله هم و میخوردیم این زوری ببین که هم آدم بدن خوشمزه به نظر میاد دیگه آبزی زونم آش آره با الان که عبزیم می هم میبینم با آش حوصم کردیم و حرفش شد زا دا؟ آش داریم اگه شما ابزی؟ زدی میگی؟ شوخی ای را... ایوالا ما... چه تصادفی؟ الان یعنی امرو... داری میبری و سه خوارت؟ نه نه دیگه... نه دون شما... دونه آبزی نمیشه این داری. نه ما درست شما درد نکنه... یعنی ضدی تو مخته قابلمه آشه؟ نوچه ما کاش یه چیز دیگر خدا میخواستیم... آبزی ببینین این ظرف غذای ما هست... اینو ما... یا آوردیم درم داره دیگه حالا برید سو دیگه نوشرت تر زیاد نریزا دو. و پیازداغ هم که تری اصل مازرات دیگه با با سبوی دمت کرم خدا خیرت بدا آش دعی فضل ما هم زور شد پس دیگه ایمان یک دونه سبز میزنم روشییک آبی می با فم قرمز و زرد و قبی با تگلاوی می بام. بای <موسیقی> کمون می بافم با تار جونم تا ذیرر پش بندا زیار مهربونم. بخشقش اون نقش زندگیگانی من. رنگش مثل اشق آسمانی من یه می دونه سرز می روشی که آبی می بافم ارمز و زرز و قهده ای گلابی می بافم اما بریم سراغ یک مطلبی که شاید خیلی از شما توی این چند روز باش برخورد کرده باشین شاید چنیده باشینش اه...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 خیلی حالشون بد. من اونجا شب تو کار میکنم که با این چیزها رو برونشم تو زندگی. تو خیلی خیلی پیدا کن.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 عملا این شده بود که من می رفتم تو اتاقه آقای حادیم ایشون شما صد کرد و دفترش که من میرفتم تو دفتر ایشا و من باید همهش طم می دررسید که الان ادین سمت من الان از سرندریش فقط پاشه. من دم در بااییی می سدم دورترین نقطه ای اتاق ایشون من می شستم سعی که الان بلندنش یا اگه بلند ش من سریع بتونم در بینم از ات. در این بار حافظه داره که خب خیلی هم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 الان این صداهایی که شنیدید مربوط به خلوت یکی از همین این دوستان بود اصولا دیگه بعد نیستی که شما هم از آخر بخوری هم از توبره هم تو صدا وسیما مدیر باشی پولای توپول مپول و مقام وامای و خفن و رانتای های تمام نشدنی و بگیری هم اگه دیدی مثلاً بین خانم همکارت همکار کسی بود که میتونست وقتی مثلا حالت بد شد بیاد به کمکت خب درخواست کمک کنی ازش اصلا این جور مواقعی که این عزیزان تازه میفهمه من بنیاددم بنی یکدیگرند.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 کو کن، کماجم کن، نذار ببوسم. کماجم کن، کماجم کن، عشق بابوی تازه ی دریایی ها، دلم چشم زندون باران، چکه چکه های آه،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 که این خارجی تا حالا گاهی شده غذاهای رو میخوریم به عنوان مجازاتم اگه به محکومین به اعدام بدن دووم نمیارن زیرش اصلا یه به خدای دروغ بگم یه وضعیتی آقا الان مثلا همین امروز فکر می‌کنی من چی خوردم اصلا من ولش مرسا تو بگو نهار چی خوردی امروز بالا من نمی‌دونم یه مایه سیه بود توش برنج داشت فکر کنم یزاره این چیزای تنگیش زده بودن جلبک دریایی بود دیدین سعيد چی خوردی تو؟ والله منم یه ماه زردی خوردم توش نمی دونم گوشت گراز آفریقایی بود چی بود با نون تست و علف استوایی. ببرم. ببرم. علی تو چی خوردی؟ والله منم اینا یکی بچه‌ها خوردن رو که اصلا نتونستم تحمل کنم فقط هرس و جوش خوردم. <تصح> بله. اصلا بشی. بچه‌ها بردش آوردیم اینجا از این غذا بهشون میدیم. از سو تغذیه از دست نرا خوبه والله. به خدا دوستان عزیزان خانم‌ها آقایون بدانید و آگاه باشید درد اصلی بشریت به طور کلی و همیشگی و البته درد اصلی خود ما اینجا چیه؟ بچه چیه؟ گشنگی گشنگی بله اینه <تصفيق> که ما تصمیم گرفتیم یه کاری بکنیم چی کار؟ عرض بکنم از همین امشب تا آخر اسفند که دیگه پس برده تموم میشون گلن لای گلنلای باقالیا و اینا دو تا برنامه مونده دیگه شما زحمت بکشین از هر جایی که هستین با ما تماس بگیرین و از غذا برامون بگین یه خورده یه خورده از غذاهاتون برامون با لحجه محلی خودتون اصلا از غذای خوشمزهی که تو منطقه خودتون وجود داره برامون تعریف کنید بعد از ریستورانهای اطراف یا ریستورانهایی که دونین مثلا اون غذایی که شما دوست دارین و که میخوایی معرفی کنین خیلی خوب درست میکنن بعد از مزه غذای بگین از رنگش، از لعابش، روغنش آخ آخ آخ. مم. مم. مم. حال شما هم بد شد. <تصفيق> من که دلزرفه شدم اصلا کلا ما خدازاری داریم دیگه یه <تصفيق> جورایی <تصفيق> <تصفيق> پس چی شد بچا شما یه بار بگین یه بار ملکه ذهن دوستان شنونده بشه لطفا بگین چی گفتین بله لطفا از هر جای ایران کسید اولا از غذای محلی شهر و دیار خودتون بگین یعنی بگین اسم قزای ما رو دلاغتون چیه بله خیلی کوتاه بگین چه درست میشه اگر رستورانی هم دورو براتون هست که اون غذا رو داره که خیلی خوشمزه اند درستش میکنه بگین کجاست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 شما تعریف میکنین ما با بچها همه سیر میشیم ما خودکشی میکنیم نه خودکشی <تصفيق> <نه تصفيق> نکنید خود سیر میشیم دیگه نصفه نیمه بالعقل یه جایی به یه جایمون میرسه دیگه آقا میخایم اصلا غذاهای جدید یاد بگیریم هر هفته یه غذا رو درست کنیم اینجا از گوشنگی نمیریم میخوام بدیم به دست بچها هر کی یه غذا رو هر هفته درست کنه اصلا میخوام آقا سلسله برنامه غذایی تایید کنیم توی این 22 تا برنامه پس وردهای باقی مونده لیگ آشپزی خوبه آقا بچا لیگ آشپزی رو بندازی اسمش هم میذاریم چی استیک استیک استیک استیجی نه ها؟ استیج نه استهج. عزیزم نه استیج بچه های خودمونم هم قراره همینجا خودمون میشین پروژیوسرهای غذا بعد بتون رای میدن بچه ها آقا من نمیدونم دیگه غذا باشه کوف باشه حرفش باشه هرچی باشه دیگه ببینیم چه میکنید دیگه چجوری میتونین تماس بگیرین های ما 23420 22 11 2433 و 23420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 پس چی شد؟ این منتظریم دیگه از فردا منتظریم برای قضا نمایی شما تماس بگیرین از غذاهای خوشمزه بگین با لحجه محلی همون همینجایی که هستیم منتظریم خالی جون رو رو رو پلو رو رو رو رو رو رو رو عده فلور رشد فلو باقری فلو یا فلو شویر خالی جون چند ماهی داری خالی هایی که نداری خالی چند ماهی دار باب سلام 23 یکشنبه یک شب را زمینه تغییر از انتشار شایعی گرفتن تعهد از اعضای لیست انتخاباتی اطلاف اصول گراویان برای ریابسات حداد داودل بر مجلس آینده، با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می نماونید اظهار نظر محسنی جعی با این مضمون که پرونده جیسون رضایان هنوز بسته نشده است و تحسین کارشناسان از ایشان گیشون از تاکوتا نمیافتاد طرفو ویل کردن الان آمریکا ولی اینا کوتا نیستن. شش برابر شدن پهنای باند اینترنت در ایران در آینده و پیشبینی ناظران که خب پس پهنای باند فیلترین هم دوازده برابر میشه و پیشبینی یک شکست سنگین برای اصولگرایان در انتخابات تا آینده از سوی محمود احمدی و نظر فعالان عرصه شکست که این بدبخته داشتن رانتشون رو میخوردن شما آمدی باشون قاطی شدی به این روز افتادن؟ <تصفيق> مهمترین نناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدند اینک مشروع خبرها با چهچهی کاورم بلی بوی با سلام مشاور حقوقی شورای عالی استان ها گفت شورای نگهبان تعیید کرده که تعداد اعضای شورای شهر تهران از و یک نفر به بیست و یک نفر کاهش پیدا کند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 شورا. کم می شود. چطور میخواهند با هم کنار بیایند وی پیشنهاد کرد. به عنوان مثال کودگیران خورا برای دور بعد با یکدیگر در خاک رقابت کنند و هر فردی که توانست اشکل گربه؟ بیا ای میکروفون میکافونت این اشکل گربه نه پس اشکل اولاغی هره دیگه بل بل, بل. با عرض پوزش بید. هر فردی که توانست اشکل گربه بهتری به حریف وارد نماید به شورای شهر راه یابد پایان مرشوه اخبار بل بله ما تشکر از ای شما چی؟ خدا فضایی میکروفون طلا چه گریه میکنی؟ چرا اینطوری میکنی؟ بل, بل. دکتر زده پای چش تو کبوت کرده؟ نه مادر شوهرت تو زندگی دخالت بیجا میکنه؟ بل بول. آقای میکروفون تلا چی میگین شما؟ ببین من طاقت عشق تو رو ندارم بول بل بلا. بگو کی گریه تو رو در برم مادرش رو به عزاج بشونم بگو ببینم چرای نگهبان ببخشید شورای نگهبان که تو در آورده یعنی چی؟ بله رد صلاحیت هم کردن یعنی تو کاندیدا شده بودی بری مجلس منی بول بول. بله ببین من فکر کنم در این مورد خاص بلبل دیگه شورای نگهبان درست عمل کرده این. یعنی انگه چرا من چیمه آقای میروفون سلا ببین دیگه یک سری قابلیت ها هست که خب ما آدم های پخته و باب تجربه در طول سالیان زراز به دست میاریم گریه نکن اینا رو تو نداری خب دیگه دختر مملکت صاحب داره شرای نگهبان حواسش به همه جا هست این پلیس فتا ای؟ اتفاقا دلیل رد به صلاحیتم همکاری با شما سای آقای میروفون سلا جان؟ به خاطر من واقعا به خاطر منه بله من میخواستم صدای زنان ایران باشم به خاطر مشکلات اخلاقی شما نشد ببین من از اولش هم میدونستم شورای نگهبان با نظارت استسوابیش این انتخابات رو به جند میکشه ببین کیف؟ ببین الان که شما داشتین دفاع می‌کردین ازشون گفتین حواسشون به همه رو هست نه. این شورا غیر قانونی بلبل من تا آخر عمرم منتقد این شورا خواهم بود بله خاله شما راحت بودیم من بهترم بهترم خب خوش باشید یه یعنی نشیا من نمی دونم دخترم میخواد سدای زنانه ایرانی باشه گرفتن خفش کرد در سدایش. بله همکنون در خدمت کارشناسان میاتی انتظامی ترافیکاتی و نامه جرایم غیر جواب سر هنگ هستیم چون بله. ما در جریان آخرین تحولات قرار داشتیم بله. جواب سر هنگ بله منم سلام عرض می کنم ها بله. در خدمتی شما هستم ای سر هنگ با توجه به اینکه در ایام مباهراجی دهه فجع هستیم بله. بفرمایید که نیروی انتظامی برای این ایام چه تدابیری را اندیشیده است ببینید بب بی نیروی انتظامی خب همیشه وظیفه و ماموریتش برقراری نظم است در این دهه مبارک هم ما نظم را برقرار می‌کنیم دیگه آقا خب یعنی شما تو پایگاه مایگاهتون گهاتون هواپیمای بادی امامی ب... چیزی ندارین سان همینجوری خشک و خالی برگزارش کردین ببینید بب بی اتفاقاً تو بسوتی کارانی من یک عدد هواپیمای خیلی زیبا بود مجهز بادی بون وانی نمادی هواپیمای امام راهل خب توی حیات قرار داده شده بود که ما تاسفانه همین روز بنده دیدم که بادش خالی شده عجب بادی کجاش دقیقا خالی شده بود سرهنگ این باد نوکش کابینی خلبان کلا یه وری شده بوده امام که اوکی بود دیگه بادی چیزی ازش خالی نشده بود نه نه خب امام که نبودن توی این هواپیمای در حقیقت نمادی از اون حادثه بزرگ بودست خب بل... پس سرهنگ دیگه جمعش میکنین هواپیما هر رو دیگه چی و زاییست خیلی مقداری خب ببینید نه دیگه با توجه به اینکه هنوز چند روزی دیگه از ایامی در فج باقی مونده است بنده به همه نیروهای خودم دستور دادم شروع کنن به باد کردنی هواپیما با... و غندیرم گذاشتم بالا سرشون حواسش باشد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 خب سرطان شنیدیم که گشت ارشادتونم دم در جشوادفج حسابی دارن جولون میدنم بله خب همکارانی من در گشتی ارشاد برای همسی شون همه جا حاضرن. بله میشه بفرمایید که تا حالا با چه افراطي برخورد شده توسط این عزیزان؟ سرن؟ بله بله عرض کنم همکارانی من این نفتو خارو داشتن که سه نفر از بازیگرای خیلی معتبر قدیمی رو ببرن تو ون ازشون تهاد بگیرن. آه به به به خب دیگه دیگه همچنین این عزیزان تونستن هفت نفر از خانومهای جوانی بازیگر رو وادار کنن که روسری شونا بکشن جلو و قول بدن که دیگه عقب نره. عجب خب دیگه کار نکردن سر؟ آیا یا چند موردی دیگه هم بود است که خب, خب مثلا کارگردانی نمایش فیلم داشته منتها چون با یه خانومی بوده است که معلوم نبود استشون خانومشونه یا خدای نکرده کرده. خانمی کس دیگه است همکاره بنده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 فقط راشون ندادن تو جشواره یعنی چی یعنی نذاشین طرف بره تو نمایش فیلم خودش بله. بعد میگی ارفاق هم کردی ب... نه دیگه ببینید ای. ایشون باز باز می شده ای. دیگه حالا چون ایامی در جبب... مبارکه فجر استا اینها هم کارانی من موردی رافت قرارشون دادن اصلا باشیم واقعا سلام. سلامات من یه سوال خیلی مهم دارم بفرمایید بفرمایید آره ببین مثلا بب... یه خانم بازیگر چند روز دیگه بلندی سیمرغ بلورین جشواره میشه خوب بله خب مبارکشون باشه بله بعد این سی میگیره میاد از جلوی معمولین شما رد بشه خب چیز منطقه خب بیدید چون دستش بنده و مثلا باد میزنه شالش میفته اینو شما باش برخود میکنی خب فرقی کند فرق نمی کند که سی باشه فرق نمیکنه کندی قانون باست را یاد بشه آه یعنی سی مرگ بلورین باید با دو کیلو جون تخمی فرقی نداره که دست با. آدم باشه دیگه آقای عزیز این... فرقی نداره قانون میگه هجاب اجباری هسه باید بشه اه. سرنگ خود سیمرغ چی یعنی اونم باید حجاب رو رایت کنه به نظر شما چه میگی آقا جون شما سیمرغ که آدم نیست ولی مرغ دیگه اه. اونم نه یکی نه دو تا سی تا صد سرنگ ببینید من هی. احساس میکنم دوباره شما حالت خوب نیست من اینجا رو آقا جون ترک میکنم هی. من دیگه سرنگ ببین به نظر من اصلا ببین. سی مرغ بلورین رو بکنین کلاق بلورین این مشکل مرغی جشوره هم حل بشین آقای عزیز بنده اینجا رو ترک میکنم چا آه. شما دوباره داری حرفای نامربوطی غیر قانونی میزنه تو رسانه سرهنگ این... وایس کجا میری با قاز هم خوبه آقا خیلی جا... جواب میده یعنی چی چی با من داره سرهنگ. من دیگه اینجا با نمیشتم آقا من رفتم سرهنگ. خدا نگه با الهام از اظهار نظر خیردمندانه دردانه عالم تنز و سرگرمی دکتر محمود احمدی نژاد که نامزدهای انتخابات مجلس را به زوجهای جوان تشبیه کرده از آنها خواسته بود تا بعد از ازدواج هم همدیگر را دوست داشته باشند اداره کل گرم کردن سحنه ازدواج های انتخاباتی کشور برگزار می نماید. جشن بزرگ ازدواج انتخاباتی مجلس شورای اسلامی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 از گرایی باستام برگی رعی، سفر رعی و دوربین صدا و سیما پدر دامات شورای نگهبان پدر عروس وزارت کشور و پدر همه مقام معظم رهبری لطفا همه مهمانان انگشت سبابه خود را به همراه داشته باشند همچنین با توجه به نیاز مبرم جامعه به شور انتخاباتی مهمانان محترم حتما آرایش کافی، ماندوی کوتاه موهای شیمیو کرده بروسری عقب در مراسم حضور به هم رسانند که اصلا هم خیالی نیست بر زم نزاوردن اطفال، بچه همسایه، سالمندان، مادر شوهر، پدرزن و هر موجود زندگی دیگری که باعث می شود حماسه حضور در دوبینهای صدا و سیما بهتر جا بگیرد خودداری نفرمایید. اداره کل گرم کردن صحنه ازدواج هاگ کل کشور از این شرکت کننده برای استیک کار فرستادن شرکت کننده از نقاط مختلف ایران شفها یا همون پروڈیوسرهای قضاهای شما برای انتخاب برنده این استیک کار آسانی رو در پیش نداشتن اما خب شنوانده هایی ما هم برای خودشون حدسیاتی داشتن در مورد استیک شرط میبندم این سوژه قضاهای ایرانی کار خود جلاله از نوشته معلومه که خیلی شکموه فلافلو با دوتا بری اضاف میزنه زده رو دست من <تصفيق> شنونده ای برای برگزار کننده های استیک اظهار نگرانی کرده بودن و پیشنهادی داشتن برای بهتر شدن برنامه فرشید اینکه ما زنیم بزنیم از قضاهای خوشمزه بگیم که بدتر شکنجس پسسی شما که شما هر روز به ما منوی روزانه بدین غذا هایدلخوااب براتون میفرستیم و برا تو هم هر روز شررق میفرستیم برای تنبو هم شرغ پلو و خورشته شرقب میفرستیم بله. و اینکه چرا که نه ما انقدر دوستتون داریم اصلا همشارعر نیسته اصلا فکر نکنی یه درصد چهره. سینا هستم از تون ممنونم از سینا، اما های ما بعضیاشون در کارایی که فرستادن ما رو از لحجه زیبای خودشون محروم کردن، متأسفانه. ولی لحجه قومی نمی‌خوام حرف بزنم. غذای محلی اینجا هم آبگوشت خنویته تازه، اونم لپهشته بم. آره. میگم اگه جا دارید منم بیام بغل الی مرسا که اومد، بخواید منم بیام. جمعمون جمع نشه. جمع خوش می‌گذره خوش. خیلی ممنونم. حالا شما فیلن به غذا برسید تا شاید یکر شرکت کننده استیک باشید. دسته‌ای هم بودن که با ما به شدت احساس هم دردی کردن به خاطر اون نهمه گشنگی که دیروز گفتیم. درد اصلی خود ما اینجا چیه؟ بچه چیه؟ گشنگی، آقا گشنگی، گشنگی، <تصفح> <تصفح> گشنگی، یعنی حرف به دل منو زدین. یعنی من از صبح که از خواب بیدار میشم، دارم فکر می‌کنم صبحونه چی بخورم، بعد که صبحونه رو خوردم، همش واسه فکر کنم که حالا نار چی بخورم، ناهاری که خوردم، همش واسه فکر حالا شام چی بخورم. بعد شامم که خوردم، دوباره هم دارم فکر کنم که حالا فردا صبحونه چی بخورم. یعنی اگه تمام این فکریایی رو که روز دور غذا خوردن اون اینکه چی بخورم و چی کار بکنم صرف علم و دانش کرده بودم الان داشتم تو ناسا آپولو هوا می‌زردم <تصفح> بله اما بعد از پشت سرگذاشتن همه پیش‌نوت‌ها و نگرانیاها و می می‌رسیم به استیک امروز جایی که چندین شرکت کننده روی گاز استیک میان و بهترین غذاشون رو برای ما معرفی میکنن و شفها و ستیک هم استیکمونا رو قضاوت میکنن نخست یک معرفی از پرودیوسرهای استیک ممنونم پرویسر اول سعید ممنونم. ببینید غذا فقط یه چیز خوردنی نیست غذا اون حسیه که آشپز آدم ها منتقل میکنه. ممنونم سعید پرویدسر دوم مهسا. من همیشه گفتم که غذا خوردن یه پرو ساسنه پروژه واسه همین آدم همیشه باید در حال خوردن باشه. بله ممنونم و اما پرویهسر سوم شهرام. مانو هم کلن طرفتر همه کسای که خوردن جدی میگیرم ممنونم اما پروژیوسر بین المللی برنامه یعنی خود سامی برحال همه میدونن که بهترین غذا ها از کشوری فغانسه میاد فغانسه و پروژیوسر آخر جلال ببینید غذا است که میابدد به نظر من برابریت اینجا فقط یه مسابقه است، و من فقط اینجا هستم تا اتفاقهای خوشمزه شما رو بچشم ممنونم از همه پروژیوسرها و شفای برنامه قبل از اینکه بریم سراغ شرکت کننده های امروز یک تنفس کتایی میگیریم و دوباره تا لحظاتی دیگه با شما خواهیم بود برمی کردیم آیا در شهر روستای شما غذاهای خوشمزه و خوشعتر فراوانی وجود دارد؟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 از رادیو پاسوردا است برای نشان دادن قابلیت‌های غذایی شما و شهر و دیارتان استیج بله بریشتیم بازم اما قبل از این که بریم سراغ بذاریم بگم توی این برنامه چه کار کردیم اول اومدیم و پروژیوسرهای یا همون شفه های برنامه استیک رو معرفی کردیم برای شما حالا میرسیم به شرکت کننده اول اولین استیک. سراغی ملافی یکی از غذایی معبوب ابوب ولزیزه بوشهر با هم نه هر قلی مویه نیا قلی موی که خود موی ساعت 5:00 بعد گرفته باشی، بیاری خونه ویدسازنک پاکش کنه تا ساعت 6 دیگه موی تو دیگ باشه. بعدش هم وقت ساعت بازی زر و رو اجاق باشی قشنگ لا بندازه بفهم چه داری می‌خوری. قلی مویه داخل رستورانا ها دقیقه میننداست چه بچن. چریکس از بوشهر. بله ممنونم از این دوستمون از بوشهر که به کار خودشونو ارائه دادن. مرسا. خب دوست من من نوع نگاهت به قلیه ماهی رو دوست داشتم قشنگ حس ماهی رو تو صدا شنیدم ممنونم سعید دوست عزیز اونجایی که قذات لواب مینداخت و من خیلی دوست داشتم و به عنوان یه تهیه کننده شخصا حاضر... حاضرم که قلیه ماهی شما رو پرودوس بکنم ممنونم جلال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 گاراج اسم اسمو معلش کاراج داره دیزیاش حقد خوشمزه‌ای که خدا میدونه نیا کن ساعت یک و نیم نه دو بره دیگه تمومه دو بری دیگه دیزی داره ولی دیزیاش دیوانه نگاه کنی یک دونه دیزیش میگیری سه نفر سیر میکنه با قرآن محسنم از ماشا ممنونم محسن جان سعید محسن جان لهجتون رو من خیلی دوست داشتم آفرین لذت بردم ادامه بدین بهترام میشین ممنون شهرام کلن توش که خوبی هستیم و دوست دارم اینجور چیزایی با دمتگرم خوشم و معقضات خوششون و معقضات چهارم جان از غذای شما محسا محسن جان این بهترین غذایی بود که من امروز دیدم اصلا انگار تو خود دیزی فروشی بودم موفق باشی. خب ظاهرا غذای شما نظر شفا و پروڈیوسرهای ما رو به خودش جلب کرده بریم سراغ شرکت کننده سوام سلام خب غضذا مدرق من و در واقع معشوق خورکی من اسمش کباب ای با پولوه کباب ای که کنارش یه رو تفت بدی و بعد رو بپاشی و کبابا و از این و گوجه سرخ کنی گوجه همچی رنگش و پس بده به بر روغم بعد دیگه از تدید سیب زمینی نام که دیگه نگم براتونامان پرودیوسل های برنامه از غذا من حمایت کنن جنس چه غذا رو دوست داشته باشه؟ ما زیر شعله رو واسه شما کم کنیم تا برسید مریم جان به به خیلی ممنونم مریم جان جلال قربونت برم انقدر شما خوب با این غذا ارتباط برقرار کردی و توصیفش کردی که به نظر من شما بیا اینجا جای من بشینید پرودیوسر بشو من برام کباب تو رو بخورم دمتون گرم واقعا بله مرسا مریم جون معلومه که شما یه شکموی تحصیل کرده هستی من حتما دلم میخواد که کباب تو رو بخورم بسیار خوب بریم سراغ سعید مریم جان با اینکه غذای سادهی ای انتخاب کرده بودی ولی تونستی صد درصد مذت رو بذاری تو کار با اینکه سبک کار من نیست ولی بهت رعی مثبت میدم خب کشبختانه این شرکت کننده تقریبا میشه گفت رعی مثبت پروژیسرهای ما رو به خودش جلب کرده بریم سراغ شرکت کننده آخر امروز شرکت کننده چهارم سلام پرشی جان یه غذای هستش بر خط خورسانه. اسمش جوشواره است. البته هرکسی دوستش نداره منتقه من بی نهایت دوستش دارم خیلی هم باش میکنه حال میکنم حالا خواستی برای تصدر پختشو میفرستم درست کن بخور حالشو ببرم. چاش ممنونم فقط خیلی یعب صحبت کرده بودن حالا نمیدونم چرا بریم سراغ محصا ببینیم نظرش چیه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 دوستان، اس این منوی کار خیلی مهمه توی کار ما. از منو غافل نشید لطفا. ولی ظاهراً نظر سعید رو هم جدی نکردید. چهرام؟ تو نظر منم بدون لحجه توزی دادن و برای مسابقه آماده نبودن. آمه. ما نپسندیدام. نپسندیدن و جلال؟ ببینید من رنگ صداشون رو خب طبیعتاً قضاشون رو دوست داشتم ولی با همکاران موافقم که باید جزیات بیشتری رو مطرح کرد. بسیار خوب. ممنونم از همگی این هم شرکت کننده امروز و ستیک امروز همین شرکت کننده ها آماده باشن برای اینکه آخر این هفته ببینیم که نتیجه چی بوده و کدوم رأی بیشتری رو میارند.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 از استیک تا شما فقط یک گاز اونم نه وجا گاز بلکه گاز واقعی فاصله است تا فرد و شب و یه استیک دیگه خدافظ تو شهر ماده شی اش بی کنم با شهری که تو شنا اسمته هم پای تو نصف جهان منی. ببین چقدر گفتن است دوست داشتن راحت جاده چالوس من رو پیرهن سواره قشنگ تو تو دنیا فقط یه رش داره طبیعتت من و تا تو دل کش میبره دیدن یاد مرکز اصلا خود را زنه بیش های رو سرید بی فرقی نداره که اهل کجام کیم چشمات خلیج ف زاد کبیر لوت، اخار میکنم. من ایرانی به ایران من به خ شت ک می کنم عطر بپی چ جغرافیای به من تو کشور من قمت جهان عمله داری رو آب و هوای من. خب بله تو حبتون خدافزی نکردم خدافزی از اون برنامه استیک اون بخش استیک اصلا کلن یک بخشی دیگه یه حالا اسمش هم چرا گذاشیم استیک بخاطر خاطر اینکه اسم غذاست یعنی حالا دیگه اسم اولین چیزی که به ذهنمون اومد از غذا استیک بود دیگه خیلی هم خوشمزده است ولی ایرانی نیست ولی خب از شما میخواییم که از سر تا سر ایران از هر جایی که هستید توی این برمه استیک شرکت کنید با لحجه محلیتون هر چه بتونید کتاه تر توضیح بدید و با لحجه محلی توضیح بدید این که زیبیشتر میره فرشیدا دندامیمازا دم چرا شدی تو حادثهات نکنه تو فکر اکبری اگه بری در بدری فرشید, فرشید پیمان شکن اعدام باید گردند فرشید آف آف. پیمان شکن اعدام باید گردند شما قول و تنها میذاری سامی و تنها میذاری رفیقای ایرانی رو تو دنیا تنها میذاری فرشید, فرشید پیمان شکن اعدام باید گردند فرشید پیمان شکن سلام فرش جان سلام, سلام. شعارای بله. که شنیدیم در جمع کثیری از اهالی تهران دیشب و پیرو تسنیم تو برای رفتن صورت گرفته این مردم شریف انزجار خودشون از رفتن تو اعلام کردم و قرار این تظاهرات همچنان به مدت 22 روز ادامه پیدا کنه مرجان هستم از تهران خیلی ما ممنونم از شعاراتون ولی اینجوری هم فکر نکنین فقط خودتون این شعار بدین بچه‌ها آماده این بچه‌ها آماده این؟, بله این؟ بله همه آماده این یک دو سه برو منافی ادام بشه پراکیامت میشه منافی ادام بشه من دام بشه دیامت بله دیامت خیلی ممنونم خوب عالیه حالا اون یکی برو بریم یک دو سه برو ما اهل پهراک نیستیم فکشی تنها به ماند ما اهل نیستیم باشی تنها به ما نند نیست باشی تنها به <تصفيق> اینم تجمع پرشور هواداران بنده در پراگ و داخل استودیو شوخی نیست که همینجوری فکر خودتون باز خودتون شعار میدین و اینا ما اینجا هیچ نیست هیچ خبر نیست ما همینجوری برامون ملت خود جوش داریم بابا ملت خود جوش پس فردایی. دمتون گر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 امشب هم تموم شدیم رسول یونان گفته فقط تاریکی می داند. ماه چقدر روشن است فقط خاک می داند دست های آب چقدر مهربان. منی دقیق نان را فقط آدم گرسنه نمی فقط من می دانم. تو چقدر زیبای. دو چشم استمے گونا، می بورد ارا، می ہوش تو خواب الود بر بودند، باغ لرزد، استبی دارا، اون اغل اغلرزد، استبی دارا، از من بگو ای خاجدم در کش چو سیلستن گذشتان را چه میترسانی از باران چه میترسانی از باران شهر را شهراشو روزی ها فرسان بگو خوابش نمیگیره به شب از استای اورال آلو ای باد شب گیری بگو یان ها مجلس را تو آزادی او خالق <تصفيق> مری